قسط های هزار یک شب شب 26 آن جوان بازرگان با نصرانی گفته بود، که چون من داخل شدم بنشستم ناگاه آن ماهرو را دیدم که تاج مکلل بر سر نهاده خرامان همی آید چون مرا بدید تبسم کرد و مرا در آغوش گرفت و بر روی سینه خود کشید و لبان من بمکید و من زبان او بمزیدم آنگاه با من گفت این تویی که در نزد منی و این منم که در آغوش تو هم. گفتم فدای تو شوم من از قلامان تو به خدا سوگند از روزی که تو را دیدهام خواب و خور بر من حرام گشته پس از آن به سخن گفتند بنشستیم ولی من از شرم لب بسته بودم و او از هر سو سخن میگفت تا آنکه خان گسترده همه گونه خوردنی ها بیاوردند خوردنی بخوردیم و دست شسته خیشتن با گلاب معطر کردیم و به حدیث اندر شدیم و من این ابیات برخاندم خوتنیوار رخ خوب بیاراسته ای چگلیوار سر زلف به پیراست ای این همه صنعت آرایش پیرایش چیست گر آشوب و بلای دل من خواسته ای پس از آن به خوابگاه رفته به چون بامداد داد شد دستار چرا که پنجاه دینار زر در میان داشت به زیر بالیم بنهادم و آن پری روی را وداع کردم او گریان گریان گفت ای خاجه روی نیکوی تو را کی خواهم دید گفتم هنگام شام نزد تو خواهم بود چون بیرون آمدم دیدم که صاحب خرب انتظار من ایستاده است من بر خرب نشسته به کاروان سرور آمدم و نیم دینار به دو داده گفتم هنگام غروب باز آی و خود ساعتی در منزل نشستم پس از آن از بهر جمع آوردن قیمت بزاعت بیرون رفتم و هنگام پسین باز آمدم و در منزل نشسته بودم خربان خربی آورد در حال من پنجاه دینار ضرب دستار چه فرو بسته سوار شدم و همی رفتم تا به خانه آن زهر جبین رسیدیم. خانه را دیدم رفته و آبکی بران زده اند. شمها در لگن و تعام در بار است و معشوقه هوروش در قراب ها کرده به انتظار من نشسته. چون مرادید بر پای خواست و دست در گردنم افکند و گفت دور از تو جان سپردن دشوار بود یارا گر بی تو زنده ماندیم معذور دار ما را پس از آن خان به نهادند خوردنی بخوردیم آنگاه کنیزکان باده پیش آوردند و همواره به می کشیدن و غزل خواندن مشغول بودیم تا نیمی از شب بگذشت پس از آن با هم بخفتیم چون بامداد شد برخاسته به عادت معهود پنجاه دینار در زیر بالین بگذاشتم و بیرون آمده خداوند خر بردر یافتم. سوار شده به منزل بازگشتم و ساعتی بخفتم. چون بیدار شدم میوه و نقل و ریحان حاضر کرده به خانه آن ماه روی فرستادم و خود هنگام قروب پنجاه دینار زرب دستار چه فرو بسته بیرون آمدم و خر نشسته به خانه دخترک سیمتن شدم و تعام و شراب بخوردیم و بنوشیدیم و تا بامداد بخفتیم آنگاه زرها به زیر بالین نهاده بازگشتم و پیوسته مرا کار همین بود تا اینکه مرا دیناری و درمی نماند خویشتن را ملامت کرده گفتم صبر کم گشت عشق روزافزون کیسه بی سیم گشت و دل پرخون حالمین است و حرس عشقم بین راست گفتند الجنون و فنون انگاه از بنزل بیرون آمده به هر سومی میرفتم، تا به دروازه رزیله رسیدم خلقی انبوه در آنجا دیدم و در میانه مردی بود سپاهی خواستم که از پهلوی او درگذرم دستم به جیب او برخورد احساس کردم که به جیب اندر بدره زر دارد قصد آن بدره کرده دست به جیب او برده به در آوردم سپاهی جیب خود سبک یافت دست در جیب برده بدره بر جای ندید و خشمگین بر روی من نگریست و دبوس کشیده بر سر من زد من بی خود بی افتادم. مردم گمان حلاک من کردند لگام اصف او بگرفتند و گفتند از بحر تنگی راه نبایستی چنین جوان را بکشی سپاهی بانگ بر مردم زد که این دزد حرامی است در آن هنگام من به خود آمدم. شنیدم که بعضی می گفتند این خوب جوانی جوانیست، چیزی بر نداشته و پاره دیگر به راستی سخن سپاهی گواهی می دادند. آنگاه مردم خواستند که مرا از دست او برهانند و در کشاکش بودند که شهنه شهر برسید و حجوم مردم دیده سبب باز پرسید. سپاهی گفت بیست دینار زر در جیب داشتم، این جوان آن را دزدید شهنه مرا بگرفت و کیسه پدید آورد زر مرد بی کم و زیاد بیست دینار بود شهنه در خشم شد و بانک بر من زد که راستی بیان کن من با خود گفتم چگونه اعتراف نکنم که در میان این جمع بدره را در بقل من یافتند و اگر اعتراف کنم به سیاست آیم. سر به زیر ناچار راستی بیان کردم شهنه آن گروه را به سخن من گواه گرفت و سیاف را به بریدن دست من فرمان داد سیاف دست من ببرید شهنه مرا را در همانجا جا گذاشته برفت مردمان بر من گرد آمدند و قدهی شراب به من دادند و سپاهی را نیز دل بر من سوخته بدره به من داد و گفت همانا تو را حاجتی روی داده وگرنه تو دزد نیستی. من بدره از او گرفتم و گفتم تا بدن روی چماها موختیم آلمی برخیشتن بفروختیم. با بابت آتش رو خندر ساختیم خرمن تاعت بر آتش سوختیم. جامعه افت برون انداختیم رندی و نادانشی اندوختیم چون سپاهی برفت من برخواسته دست بریده خود در جندهی فرو پیچیده با حالت زبون به خانه معشوقه رفتم و خود را به بستر انداختم چون معشوقه مرا گرگون یافت سبب باز پرسید گفتم: سرم از خمار دوشینه به اندر است آن پریزاد از سخن من اندوهگین شد و گفت ای خاجه دل مرا مسوزان و ماجرای خود بیان کن از روی تو چنین می نماید که سخنی داری؟ من گفتم، سخن گفتن از من مخواه آن ماه روی بگریست و گفت چون از که تو را بر خلاف پیش می بینم؟ القصه او با من حدیث می کرد و من زبان پاسخ نداشتم تا اینکه شب برامد تعام حاضر آوردند از بیم آنکه راز من آشکار شود، تعام نخوردم یار مهربان با من گفت ماجرای خود بازگو که تو را محزون همی بینم من جواب ندادم انگاه شراب آورد و با من گفت باده بنوش که همه اندوه از دل ببرد گفتم اکنون که باده بایدم خورد تو به دست خود بنوشان آنگاه قدهی بر من بنوشانید و قدهی دیگر پیمودن پیش گرفت من دست چپ برده قده بگرفتم و سرشک از دیده روان ساختم چون دید که من قده به دست بگرفتم و گریان شدم فریاد برکشید که از بحر چه گریانی و قده با دست چپ چرا گرفتی؟ من سخنی نگفتم و قده بنوشیدم و همواره او باده به من همی پیمود تا اینکه مستی بر من چیره شد و خواب مرا در رو بود انگاه ساعد بی دست مرا بدید و کیسه زرد در به من پدید آورده محزون شد الاس سباه که بیدار شدم قدهی شراب به من بنوشانید و تعام پیش آورد من اندکی تعام خورده برخواستم که از خانه بیرون شوم مرا منع کرد و گفت بنشین من بنشستم گفت اکنون که ترا محبت به دین رسیده که تمامت مال خود به من صرف کرده و دست خود نیز در راه من داده ای خدا را گواه میگیرم که از تو جدا نخواهم شد انگاه قاضی و شهود حاضر آورده ایشان گفت که مرا با این جوان کابین کنید و گواه باشید که مهر خود گرفتم و کنیزکان و بندگان و هرچه که مراست از آن این جوان است چون قاضی و گواهان مزد گرفته بازگشتند آن ماه روی آستین مرا گرفته به مخزنی برد و صندوق بزرگی که در آن مخزن بود بگشود نظر کردم دیدم که پر از دستارچههایی است که من برده بودم گفت هر دستارچه که با پنجاه دینار به من داده ای من در این صندوق گذاشتم اکنون مال خود بگیر که در نزد من عزیزتر از جانی از آنکه مال خود بر من صرف کرده ای و دست خود در راه من داده ای. اگر من جان بر تو نسار کنم پاداشتو نخواهد بود پس از آن تمامت مال خود را از زرینه و املاک در ورقهی نوشته به من داد و آن شب را به سبب حادثهی که به من روا داده بود با خزن و اندوح به روز آورد و چون بامداد شد رنجور گشت و روز به روز رنجوریش فزونتر میشد تا اینکه ماهی نگذشت که آن یار مهربان درگذشت. من هفت روز در ازای او بنشستم و بر تربت او بقعهای ساختم و مالی بسیار در خیرات او صرف کردم پس از آن دست به مال او بنهادم و انبار کنجد که به تو فروختم یکی از انبارهای او بود و تا کنون انبارهای او همی فروختم الحال تمنی من از تو این است که قیمت کنجد به هدیه از من قبول کنی و سبب قضا خوردن من با دست چپ همین بود و مرا تمنای دیگر از تو این است که با من به شهر بقداد سفر کنی من تمنی او بپذیرفتم و ماهی مهلت خواستم پس از آن به زاعت خود فروخته متاع گرفتم و با آن جوان به سوی همین شهر سفر کردم آن جوان به زاعت خود فروخته مطاع دیگر خرید و به مصر بازگشت مرا آبشخور در این شهر نگاه داشت تا اینکه این حادثه روی داد گفت این حکایت خوشتر از حکایت اهدب نیست ناچار هر چهارتن را بکشم قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست